اینجا چه خبر است؟ خیلی شلوغ است؟ چرا ماشین ها ساعت دوازده شب بوق میزنند؟ این یک کاروان عروسی است؟ کاروان عروسی یعنی چه؟ بعد از پایان مراسم عروسی در تالار، مهمان به همراه عروس و داماد به خانه جدیدشان میروند؟ چه خوب؟ پس آنها به این شکل خوشحالی خودشان را نشان میدهند بله، ببین ماشین عروس آنجا در بین ماشین ها است بله میبینم، خیلی قشنگ است، پر از گل است ازدواج در ایران مراسم مختلفی دارد، این یک نمونه از آنهاست. از جوانهای ایرانی شنیدم که مراسم عروسی خیلی پرهزینه است بله، معمولاً مهمانی در تالار یا باغ یا هتل است البته بعضیها یک مهمانی خیلی ساده می گیرند. این خوب است، من با جشن ساده ازدواج موافقم من هم همینطور